پیکر سردار ارشد دوله سه روز در میدان توپخانه بر سر دار بود از عوام و خواص از شهری و دهاتی از دور و نزدیک مردم به تماشا می آمدند. زنان چادر و پیچه بر سر و روی و بچه به دست و بغل میدان را جولانگاه کرده بودند هر سه روز توپخانه قوقا بود جمعیت می آمد و میرفت و در هم می لولید و محل خلوت نمی شد از سحری تا افتار این قلغله برپا بود آنها که به تفرج و از دور دست آمده بودند دستمال بسته نانی و قاتقی و قمقمه آبی هم با خود آورده بودند تا در حاشیهٔ میدان روزه را بشکنند هر هرکس که از کنار جسد رد میشد کنجکاوی شومش را با ادای جملهای یا خواندن وردی یا حرکت سر و دستی نشان میداد منوردوله و شمسلطنه جلوی سردر شمسلیماله از درشک پایین آمدند و به طرف میل آسیا روانه شدند. گردش آن روز را شمسلطنه پیشنهاد کرده بود تا موضوع خواستگاری عبدالله خان نایب را قبل از مادر با خال خانده و نزدیک سر از خاله فیصله بدهد. شمسی از دو روز قبل به خانه یلاغی علی خان به چیزر رفت در آنجا، موضوع را به منور دوله در میان گذاشت و اشک شوق او را با دادن خبر زناشویی غریب الوقوعش درآورد. از علی خان وعده گرفت که به دنبال لقب رفیع نظامی برای نایب باشد و حالا سر موعد با خال منور به میادگاه میرفت تا عبدالله خان را ببیند قبل از ورود شمسلطنه به چیزر علی اکبر خان خبر فتح یپرم خان را به منبر دوله داد و گفت عجب جای محسن خالیه روزی نیست که یادش نکنم کاش بود و فتوحات مشروطه رو میدید گرچه هنوز راه درازی در پیشه هر کس در ساز ناسازگاری کوک کرده نای پوسین یه طرف حیدر چپچل یه طرف نمیدونم عاقبت کار چی بشه ولی مثل اینکه که باشی ارشددوله دوله در این جنگ رفعه خطر از طرح محمد علی میرزا شده باشه. منبر دوله کشید و نمه چشم رو ورشید و گفت روح شاد محسن خان خلداشیان باشه انشالله اما چه زود رفت رفت و ما رو تنها گذاشت. چه علاقه ای برشد دوله داشت. لکبر برخان گفت منم داشتم والا همه داشتیم خادم به ملیون بود اول کار. در بطن خواهیش محل تردید نبود. چی شد محض اختلاف با یکی دو نفر سر دو کلم حرف ناحساب در این انجمن و ناگهان به همه چی پشت کرد به طرف ممدلی میرزا رفت منافر دولی گفت محض کدورت شما ارشد منم ناچار ترک اختر دوله رو گفتم خب البته بوج و باد خودشم دخیل و بعد آه دیگری کشید و اضافه کردن که باشه که همه این دو دستگی یا باز باز زندگی به قرار و قاعده پیش بره علی خان گفت شازده داماد ملی زمان که به کلی از اوزا ملیوسی میخواد بنکن بره فرنگستون از صحت عمل مسادر امور در گذشته که دل کنده بود به تون رویه تازه به دورون رسته هم دل نبسته معتقده اینا قاشق هر آشن آخ جاد خالی محسن فقط محسن توقیان شازده رو آروم بکر وقتی شم رسید علی خان خانم خانمها را تنها گذاشت و از چیزر روانه قلهک شد که از شاهزاده دیداری بکنم. خواستگاری نایب از شمسی پس از بازگشتش از ورامین و با مراسله انجام گرفته بود. تصدقت کردم عزیز بهتر از جانم قربان آن چشمانت بروم مونسم رو و روانم نمیدانم به چه زبان عرض کنم شرح مفارقت از آن سننم را باری اگر جان نصار را به غلامی قبول کنی، به او جبه سلطانی عطا کرده ای، و الا به درویشی و دیوانگی سر به بیابان خواهد گذاشت که آدم دیوانه بحثی نیست بر او زیاده چه ارز کنم، شرح همه احوالات مورس تطویل و موجب کسالت خاطر آن عزیز می شود. امید از بر قصورات و فطورات این حلقه به گوش، قلم عاف بکشید و او را به بندگی درگاه سرفراز برمایید. انار حقیقی ابدلله نایب عبدالله این مکتوب را به خون جگر نوشت ده بار نوشت و پاره کرد زبانش در وصف دلدادگی عاجز بود آن مستی و سرخوشی را که از دیدن شمسلطنه احساس میکرد نمیتوانست به هیچ روی بیان کند نخست نزد میرزایی به مسجد شاه رفت که او حال دلش را به رشته تحریر درآورد میرزا آنچه را از فند مراسلات میدانست در وسط گذاشت. اگر از احوالات این جانب خواسته باشید به همدالله آفیت حاصل است و ملالی نیست جز دوری شما که آن هم به یمن باری تعالی برطرف خواهد شد. برای اهل خانه سلام دارم، برای ابوی و اخوی و والد سلام دارم، برای نای و عبدالله نامه را از دست میرزا بیرون کشت گوه ای وله حاجی؟ تو که از زبان منم قاصرتره من از عشق میگم تو از هوا میگی ها سگ کجا خانه کجا میزار تون شد گفت خط دارینای خود جور بکش من که اینجا دکان ارزگی با نکردم مردم معقولات میخوان منم معقولات می مینویسم اجرت منو بده سایت رو کم کن عبدالله خان نوشته میزا رو پارو کرد گفت اجرت چی بابت این حرف صد تا غاز اجرت بخواد برو امو اجرت خبری نیست با نقزان نقزی با گوزان گوزی میرزا نیمخیز شده ای حروم لغمه با من گردن کلفتی میکنی لوتی بازی در میاری لند ترانی میخونی اون عروسی سر نگیره که تلیش اینه نایب عبدالله به طرف میرزا بگشت گفت بیایی مزده تو پس بگیر که من گرفتارم عبدالله خان از کمک میرزا که نومید شد عباس خان که به عاشق پیشگی شهرت داشت پناه برد و بیان که معشوق را لو بدهد گفت میخوام یه رقعه بنویسم و خان پر از سوز و گداز چو کنم اباسخان گفت شهی براش بنویس غزل باشه بهتری نایب ابدالله پرسید غذل از کی اباسخان گفت اس کی تفاوت نداید شبم بیایش باغ صید سوئیسات علم کرده شیاب و کبابم به یاهه نایب دست از پادرازتر برگشت و مکتوب را خودش نوشت و از سخن شاعرانه چشم پوشید با این حال سورت این کلمات از عاشقانه هیچ کم نداشت وقتی شمسلطنه نامه را خواند همان ترنم و همان تمنا و همان شوریدگی را در آن یافت که گویی خوانده است بیا بیا که شدم در قمت و صودایی درا درا که به جان آمدم ز تنهایی عجب عجب که برون آمدی به پرسش من ببین ببین که چه بیتا ز شیدایی بده بده که چه آورده ای به تحفه مرا بنه بنه بنشین تا دمی بیا سایی مرو مرو چه سبب زود زود میبروی بگو بگو که چرا دیر دیر می نفس نفس زده ام نالهاز فرقت تو زمان زمان شدهام بی رخ تو سودایی مجو مجو پس از این زین ها راه جفا مکن مکن که کشد کار ما به رسوایی برو برو که چه کش می رویی به گری بیا بیا که چه خوش میجمعی به رعنایی انقدر نامه را خوان تا کلمه به کلمش را از بر شد. همان روز بر کاغذی با خط خوش نوشت، روز یک شنبه شانز شهر رمضان چهار بعد از دست پای میل آسیا تشریف داشته باشید برای مذاکرات در حضور سرکار علیه عالیه خانم منبر دوله شمسی. و یاد داشت را توسط زهرا سلطان به دست نایب عبدالله رساند. عبدالله خان وقتی خط شمسلطن را خواند با شادی و سبکبالی میزدگان به زهرا سلطان گفت زهرا سلطان به این قبل تو لیاخات ترفیه داری. بعد از این تو زهرایا ولی نه زهرا سلطان. زهرا سلطان بیان که فرق میان سلطان و یاور را بداند در حق نایب عبدالله دعا را به کمال رساند الهی از زندگی خیر ببینی بی عبدالله خان الهی داغ عزیز نبینی الهی عاقبت به خیر بشی الهی درد و بلا ازت دور باشه الهی زنده باشم تو عروسی خدمت کنم خان نایب عبدالله خان یک پنج هزاری مشتلق که دست زهرا سلطان گذاشت و زهرا سلطان سناخانان سکه را در گوشه چار گرفت زد و صبح روز قرار نایب عبدالله با اینکه میدانست شمسلطنه را نخواهد دید، بیقرار به خانه منزه سلطان رفت و امیر خان را به گردش با خود برد تا بوی گل را از گلاب بشنود. این دو بعد از بالا و پایین رفتن در لالزار به محله پارک اتابک رفتند، نهار را در هتل پارک خوردند، در اتاق غمار هتل پنج دستی تخت نرد بازی کردند و قدم زنان و خرامان به طرف میل آسیا را افتادند امیرخان قبل از نایب عبدالله خواهرش و منبر دوله را دید و با خال منورش دست به گردن شد و جواب قربان های او را با لبخندی کج و مووج و خام دستی های کودکانه داد که همش برای منبر دوله عزیز بود بعد از رد و بدل تعارفات و تکلفات بین بزرگترها صحبتهای جدی به میان آمد نایب عبدالله در کنار منبر دوله به راه افتاد، سینه را صاف کرد و خطاب به او با صدایی بی پست و بلند و کلماتی سربازی و گزارشی از وضع مالی و امکانات زندگی، از زنی که خداوند از او گرفته است و پسری که به او عطا کرده است، از طرفی که مقرر شده است، بگیرد، از علاقه که به شم دارد، از آیندی که دار و ندار و هست و نیستش به اراده او خواهد بود، سخن گفت. شمسلطنه از پشت سر می آمد و امیرخان جلو افتاده بود و همگی به طرف ازدهام در میدان توب خانه می رفتن. منفر دوله گوش میداد و به تناسب گاه آه میکشید گاه اظهار همدردی می کرد، گاه با گفتن خدا رحمتش کنه یا قدمش مبارک یا هنوز اول زندگی راه ترقی بازه یا انشالله به مبارکی و میمنت نایب را به صحبت ترقید میکرد. تا بالاخره حرف های عبدالله به پایان رسید و منبر دوله پاراسوس کرد و ایستاد و گفت نایب عبدالله شمسی حکم خوهرزاده من و داره حکم برادرزاده علی اکبر خونه. ما اگر او رو به دست شما بس بریم سعادتش از شما انتظار داریم این دختر یادگار محسن خانه این دختر ناز پرورده است مبادا گزندی بهش برسه عبدالله نایب گفت من در خدمتش کمر بستم منبر دوله نگاهی به طرف شمسلطنه داخت و گفت راضی کردن منازد سلطنه با من مقدمات که چیده شد انشالله عروسی رو را میندازیم اما شما هر دو حالا ازادارین هم عیال شما فوت شده هم محسنخان نازنین از دست رفته در اینجا باز نیمگاهی به شمسی که کم کم شانه به شانش ایستاده بود کرد و با دیدن حالات او اضافه کرد بهتر عقد بی سرسدا باشه تا انشالله بعد جشن خودم براتون میگیرم و یک دست شمسلطنه یک دست عبدالله خان را در دست گرفت و چشمانش از رعفت و عطوفت نمزد امیر خان دوان دوان به طرف این سنفر آمد و چشمان گشاد ترس خوردش را به صورت منبر دوله دوخت و گفت خاله منبری نهش اونجا تو میدونه سر تناب داره میچرخه منبر دوله دست های شمسی عبدالله را رها کرد و هر دو دست را روی شانه های امیر گذاشت و پرسید نشه کی امیر جان ای خدا بکش منو چرا به این حال افتادی این بچه را از اینجا ببریم اینجا چه خبره بمیرم برای چته و میر خان را در پناه جادرش گرفت نایب عبدالله گردن کشید و ازدهام و تناب و چوب و جسد را برای بار اول دید و او هم پرسید نشه کی سره داره زنی که دست بچه کوچکش را گرفته بود و او را کشان کشان می برد گفت رابیا زلیل مرد الان میارانش پای ما هنوزی چی نگیدیم په و پریده بازاری فربه و کتا قدی که جلوی زن و بچه می‌رفت رو گرداند و گفت دیروز من سلات زور رسیدم داشتن یخت و شکمش میریختن که به افونت نگیره نایو عبدالله با صدای رسا از مرد پرسید از کی حرف میزنی زنی ملایی که دامن عبا را با یک دست ورچیده بود و با دست دیگر تسبیحی را در هوا می برد و به سمت میانه میدان روان بود جواب داد از ارشد کافر که به مکافات اعمالش رشید بیا جلو به تماشا مؤمن که ایالجاتش از زرگنده رسیدن میخوان نحش منحوس و ملعون و تحویل بگیرن ناگهان خون نایب به جوش آمد و سیویلهایش لرزید با یک قدم بلند جلوی ملا سر درآورد راه را, را, را برو سرد کرد و سر را پایین آورد و گفت به اندازه دهنت حرف بزند آخون اگه ارشد به تو میگفت سه پنشه پونزه شوی قالب تو این میکردی تو چه به این خلطا تو برای اون سالار بر اون سردار فاتحه بخون رد چه؟ ملا هراس خورده نیم قدم باقر برداشت دامن را نیمه به طرف سر برد و گفت یا ایوه هنناس این زندیق برای من شوشکه کشیده یا ایوه هنناس این از خدا بیخبر با من مرد خدا در افتاده اسلامتون کو مسلمانی کجاست یا ایوه هنناس ناگهان سکوتی بر میدان توبخانه افتاد و آخرین آوای فریاد ملا را در خود بلید و همه سرها به طرف کالسکی برگشت که زنی بلند بالا و باریک کندام و سراپا اندود در سیاهی شنگرفی چادر و روبنده از آن پیاده شد و در کنار کالسکی ایستاد و سر و دو دست را رو به آسمان بلند کرد صدای نالی چرخای گاری دوچرخی در هوا برخواست که به طرف دار و جسد می دو نفر تناب را بریدند و پیکر خشک شده وگلوله داغ ارشد دوله را پایین آوردند و برگاری گذاشتند منور دوله که از آب دیده صورتش خیس بود سر امیر خان را بر گرفت تا های او را که از گریهٔ دا آرز شده بود بخواباند و گفت بیا بریم همیشان بیا بریم اختر دوله است که با عضای شوهرش اومده خدا هیچ عزیزی رو زلیل نکنه هیچ غروری رو اینطور نشتن بیا بریم زیر بالشو بگیریم